بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به اندازه محرمان نهایت باره الفلام را این آیات کتاب آشکار است حقا که ما آن را قرآن عربی نازل کردیم تا باشه که شما در کنید ما به تو بهترین کسه را را کس قسمی کنیم که اینکه که به تو این قرآن را وحی کردیم هرچند پیش این از غافلان بودیم بیادار هنگام هنگامی را که یوسف با پدرش گفت ای پدرم من یازده ستاره و خوشید و ماه را به خواب دیدم که به من سجده می کنند یعقوب گفت ای پسرکم رویای خود را به برادرانت قصه مکن مبادا برای تو دسیسهای بسازند حقاک شیطان برای انسان دشمن یست و بعد ترتیب پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعبیر خوابها و حوادث به تو میاموزد و نیمت خیش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند مثل که آن را پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد حقا که پروردگارت دانا و با حکمت است واکن در داستان یوسف و برادرانش نشانه است برای جو حق بیادار وقت را که برادران گفتند براستی که یوسف و برادر سکی او نزد پدر ما از ما محدودترند. در حالی که ما نیومندیم بگمان که پدر ما در خطای عشقار است یوسف را بکشید یا او را به سرزمین نامعلوم بیفقنید تا توجه پدر شما تنها به شما بماند و بعد از وی گروه صالح باشید یکی از آنها گفت یوسف را مکشید اگر کاری می خواهید بکنید او را در قعر چاهی بیفکنید تا یکی از ره او را این گفتند ای پدر ما تو را چی شده که برای یوسف ما را امین نمیدانی، در حالی که ما واقعا خیرخواه اویم اوییم او را با ما فردا بفرست تا بیا و بازی کند و بیبمان ما بر او نگهبانی یعقوب گفت واقعا مرا اندوهگی می سازد که او را از پیش من ببرید و حراس دارم ما در هنگامی که متوجه او نباشید او را گرگ بخورد گفتند اگر او را گرگ بخورد در حالی که ما نیرومندیم، مندیم که در آن صورت زیار کار خواهیم بود پس چون یوسف را بردند و اتفاق کردند تا او را در قعر چاهی بیفگنند به وی وحی کردیم یقینا شان را به این کارشان آگاه می گردانی در حالی که آنها تو را نشناسند و شبانگاه گیریهکنان نزد پدر خود آمدند گفتند ای پدر ما حقیقت این است که ما رفتیم با هم مسابقه می کردیم و یوسف را نزد کالاهای خود گذاشتیم پس گرگ او را خورد ولی تو سخن ما را باور نمی کنی اگرچه ما راستگو هم باشیم و پیراهن او را با خون دروغینی که به آن آغشته بودند آوردند یعقوب گفت نخیر بلکه هوای نفس شما برای شما این کار را آراسته است پس کار من صبر جمیل است و خدا بر آنچه می گویید مددگار است و کاروان آمد آبدار خود را فرستادند او دلو خود را انداخت و گفت چی مژده ای این است و او را به حیث سرمایه پنهان داشتند و خداوند به آنچه می کردند داناست او را به بهای ناچیز فروختند در همه چند و در مورد فروختن او بی اعتنا بودند و کسی که او را از مصر خرید به همسر خود گفت مقام او را گرامی دار شاید او با ما مفید ثابت شود یا او را فرزند بگیریم و بدین گونه یوسف را در آن سزمین جاگوزین ساختیم تا به او تعبیر خوابها و حوادث را بیاموزیم و خداوند بر کار خود غالب است و دیکن اکثر مردم نمی دانند و چون یوسف به حد بلوغ رسید او را قدرت داوری و علم دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم و از زنی که یوسف در خانه او بود از او تمنای کمجویی کرد و درها را بست و گفت پیش برای کمجویی تو آماده یوسف گفت پناه میبرم با خدا بیگمان شوهر تو صاحب نعمت من است او مقام مرا در این خانه گیران می سهد که ستمگاران دستگار نمی شود. و آن زن از یوسف کام خواست او نیز اگر دلیل پروردگارش را نمی دید از آن زن کام می جست این چنین کردیم تا از او به دیو فحشا را دور سازیم او از بندگان مخلص ماست هر دو سوی دروازه شتافتند او پراهن یوسف را از پشت دید و شوهر آن زن را نزدیک دروازه یافت. زن گفت جزای کسی که به خانواده تو به دیبه چیست جز آنکه زندانی شود یا عذاب دردناک ببیند یوسف گفت این او بود که مرا به کام جوی فراخواند. و گواهی از کسان آن زن گواهی داد بر اینکه اگر پیراهن او از پیش دریده شده است پس زن راست میگوید. و یوسف از دروغگویان است ولی اگر پیراهن او از پشت دریده شده است پس آن زن دروغ گفته است و یوسف از راست گویان است و چون عزیز پیراهن او را دید که از پشت دریده شده است گفت بیگمان این کار از مکر و افسون شما زنان است و بیگمان مکر و افسون شما بزرگ و خطرناک است یوسف از این ماجرا درگذر و تو هم ایزان برای گناهت آموزش بخوا تو واقعا از خطاکاران بودی. گروهی از زنان در شهر گفتند زن عزیز از غلامش کام می جوید این جوان به عماق دل او را یافته است بگمان ما او را در گمراهی آشکار می بینیم چون زن عزیز از مکرشان آگاه شد ایشان را دعوت کرد و برایشان تک گاهی آماده ساخت یعنی مهمانی مجلل برپا نمود. و برای بریدن میوه به دست هر یکیشان کار دیداد و با یوسف گفت بر ایشان بیلون های. پس چون او را دیدند او را ستودند و در عالم حیرت دست های خود را بریدند و گفتند پاکست خدا این جوان بشر نیست این نیست مگر فرشته نجیم زن عزیز گفت این است آنکه که مرا در مورد عشق با وی ملامت کرده بودی من واقعا برای کام گرفتن از او با وی مراویده برقرار کردم ولی او خویشتنداری کرد ولی اگر او از آنچه چه با او دستور میده هم ایباور زد البته به زندان خواهد افتاد و مسلما از زمره مردم زلیل خواهد شد یوسف گفت بروردگار من زندان نسبت به آنچه مرا به آن فرا خوانند برایم خوشاینتر است و اگر از من دسیسه این زنان را دفع نکنی با ایشان شفته شوم و از جاهلان میگردم در این حال پرودگارش دعای او را اجابت کرد و دسیسه ایشان را از او دفنمون حقا که هم اوست شنو و دانا سپس بعد از اینکه نشانههایی را از پاکی یوسف دیدن با آن هم خاطر ایشان آمد بهتر است او را تا مدت زندانی کنند و با او در زندان دو جوان داخل شدن یکی از ایشان گفت خود را در خواب می بینم که انگور را برای شراب می فشارم. و آن دیگر گفت خود را در خواب می بینم که به سرم نان می برم و مرغان از آن می خورند. ما را از تعدیل آن آگاه ساز ما تو را واقعا از نیکوکاران می بینیم یوسف گفت برای شما تعامی که جیره داده می شود مگر اینکه پیش از آن من از تعدیل آن خوابها شما را آگاه سازم این از است که خداوند به من آموخته است بگمان من کیشی گروهی را ترک گفتم که به خدا ایمان نمی و ایشان به آخرت کافرند یعنی از قیامت این کار دارند و کیش پدران خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیروی کردم برای ما روان نیست که به خدا چیزی را انباز گیریم این از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولی که اکثر مردم ناسپاسند ای دو یار همزندان من آیا معبودان متعدد بهترند یا خدای واحد و بسیار غالب؟ شما غیر خدا نمی پرستید مگر اسم های بی‌مصمای را که شما و پدران شما بر آنها نام خدا را گذاشته اید خداوند بر آنها هیچ دلیلی نفرستاده است نیست حکم مگر از جانب خدا حکم کرده است که جز او کسی دیگر را نپرستید این از آین واقعی و که اکثر مردم نمی دانند ای دو دوست هم زندان من اما یکی از شما آزاد می شود و به با بادار شراب می نوشاند و اما آن دیگر بددار را ویخته می شود و مرغان اثر او می خورند در موضوع که سوال می کنید چنین حکم شده است و یوسف با یکی از آن دو تن که می پنداشت آزاد می شود گفت مرا نزد بادارت یاد کن اما شیطان یاد یوسف را نزد بادارش از خاطر او برد و یوسف چند سال در زندان باقی ماند با شاه مصر گفت در خواب هفت گاو فربه را می بینم که هفت گاو لاغر آنها را می و هفت خوشه سبز غلع و هفت خوشه خشک را ای کلان شویندگان حکم خوابم را روشن کنید اگر خواب را تعبیر کرده می توانید گفتند خوابهای پریشان است و ما به تعبیر خوابهای پریشان آگاهی نداریم یکی از آن دو نفر که از محبس نجات یافته بود و بعد از مدتی یوسف را بیاد به یاد آورد و پادشاه گفت من شما را به تعبیر این خواب خبر می دهم پس مرا نزد یوسف بفرستید یوسف ای مرد راستگویی برای ما تعبیر رویای هفت گاو فربی که آن را هفت گاو لاغر میخورن و هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگری خشکیده را بگو شاید من به سوی این مردم برگردم تا ایشان بدانم. یوسف گفت هفت سال پیاپی پای طبق معمول زراعت می کنید پس آنچه را درو در می کنید در خوشه آن بگذارید مگر اندکی از آن را که می خورید باز بعد از آن هفت سال سخت خشکی و قحطی می آید که آنچه را برای ایشان از پیش ذخیره کرده بودید می خورند مگر اندکی از آنچه که برای تخم نگه می دارید بعد از آن سالی می آید که در آن برای مردم باران فراوانی می شود و در آن انگور و دیگر دانه ها را می فشرند و از آن آب می کشند پادشاه گفت او را نزد من بیاورید اما یوسف هنگامی که فرستاده نزد او آمد گفت نزد بادارت بازگرد و از او بپرس و موقف زنانی که دستهای خود را بریدند چیست بیگمان خداوند من از مکر ایشان اوغاست. پادشاه و زنان گفت، هنگامی که میخواستید از یوسف کام بگیرید، موقفش ما چی بود؟ گفتن، پاک است خدا، ما در او یعنی یوسف از به چیزی نیافتیم زنی عزیز گفت، حالا حق آشکار شد، من با او برای کام گرفتن مراویده برقرار کردم و او واقعا از راست راستکاران است این را گفتم تا بداند که من در غیابش به او خیانت نکردم و خداوند هرگز نیرنگ خاینان را رهبری نمی کند. و خیشتن را هرگز طبیعه نمی کنم زیرا نفس سرکش انسان را یقیناً به بدی امر می کند مگر کسی که پروردگارم بر او رحم کند بیگمان پروردگار من آمرزنده زنده و مهربان است پادشاه گفت او را نزد من بیاوری تا او را خواست به خدمت خیش بگمارم پس چون پادشاه با او سخن زد برایش گفت بیگمان امروز چون نزد ما دارای مقام والا و اعتماد کامل می باشی. یوسف گفت مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار. بیگمان من محافظت کننده آگاهی هستم و بدین گونه ما به یوسف در سرزمین مصر مکنت و مقام دادیم به هر جایی که در آن جاگزین می شد و هر گونه ای که می خواست تصرف می کرد رحمت خود را به هر کس که بخواهیم نصیب می کنیم و مزد نیکوکاران را ضایع نمی گردانیم بگمان برای آنانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری ورزیدند مزد آخرت بهتر است برادران یوسف به مصر آمدند و بر او وارد شدند یوسف ایشان را شناخت ولی آنها او را نشناختند انگامی که یوسف ایشان را به با بارهایشان مجهز ساخت گفت برادری را که از پدر شما است نیز نزد من بیاورید آیا نمی بینید که من پیمانه را کامل می دهم و من بهترین میزبانانم و اگر او را پیش من نیاورید پس برای شما به نزد من پیمانه از غلن نخواهد بود و به من نزدیک این گفتند ما در باره او با پدرش صحبت خواهیم کرد و ما البته این کار را انجام دادنی هستیم وای با کارمندان خود گفت مال یعنی قیمت غله را در بارهایشان بگذارید تا چون به سوی خانواده خیش بازگردند از آن خبر شود تا باشد که ایشان باز آید چون نزد پدر خود بازگشتند گفتند ای پدر ما از ما پیمانه یعنی دادن غلم من شده است مگر این که برادر خود را با خود ببریم، پس برادر ما را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم یعنی غلم را دست داریم و ما واقعا او را نگ گفت آیا شما را به وی ایمن شمارم چنانچه شما را پیش از این با برادرش یوسف ایمن شمردم پس خداوند بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است و چون متای خود را گوشودند دریافتند آنچه برای خرید غلط تادیا کرده بودند به ایشان مسترد شده است گفتند ای پدر ما آیا بیش از این چی می خواهیم؟ این است مال یعنی قیمت غلط که با ما مسترد شده است و برای خانواده خود غذا می آوریم و برادر خود را نگهبانی می کنیم، و بر غله خود پیمانه یک اشتر را می و گرفتن این پیمانه آسان است یعقوب گفت هرگز او را باشمان نمیفرستند تا با من عهد به نام خدا بدهید که او را واقعا با من باز می آورید مگر اینکه که محاصره چون با او عهد معکد دادند گفت با آنچه چه می واند و وکیل یعنی گواه و نگهبان است و در هنگام حرکتشان گفت ای پسران من از یک دروازه وارد شهر نشوید و از دروازه های متفرق داخل شوید و با این هم از شما چیزی را از قضای خدا دفع کردن نمی توانم حکم تنها از آن خداست بروی توکل کردم و همه متوکلان باید بر او توکل ورزد و چون ایشان به گونه که پدرشان به آنها امر کرده بود داخل شهر شدن این کار چیزی را که از جانب خدا به ایشان تعیین شده بود دفع کردن نمی توانست مگر حاجتی را که در دل یعقوب بود برآورده ساخت و او بیگمان از علمی که با وی بودیم برخوردار بود مگر اکثر مردم نمی دانند و چون بر یوسف وارد شدند برادر سکه خود را نزد خود جای داد و برایش گفت بیگمان من برادر تو می باشم پس آنچه ایشان می کردند اندوهگین من باش. پس چون ایشان را به بارهایشان مجهز ساخت جام آبی را در باری برادرش نهاد سپس آوازدهنده آواز داد ای کاروانیان بیگمان شما دوز هستید برادران یوسف و ایشان روی آورده گفتند چی چیز را گم کرده اید گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده اید و هر کسی که آن را بیاورد یک بار شطر غلب رایش مقرر شده است و من به آن زامینم برادران گفتند سوگند به خدا شما می دانید که ما نیامده تا در زمین فساد نماییم و هرگز دزد نبوده ایم. کارمندان توضیح غلط گفتند اگر دروگو باشید جزای این عمل چی خواهد بود؟ گفتند جزای آن این است هر کسی که در بار او جام یافت شود پس خود آن شخص جزای آن باشد ستمگاران را این چنین جزا می دهیم پس وای قبل از بار برادرش به با تلاشی بار آنها آغاز کرد سپس آن را از بار برادرش برآورد ببین گونه برای یوسف چارهسازی کردیم او نمی توانست برادرش را مطابق و آیین پادشاه مصر اسیر بگیرد مگر اینکه خداوند بخواهد درجات هر کسی را که بخواهیم بلند می گردانیم و خداوند بالاتر از هر صاحب علمی عالم است گفتند اگر او دزدی کرده است پس بگمان برادری که او پیش از این داشت نیز دزدی کرده بود اما این را یوسف در دلاش نگه داشت و آن را به ایشان آشکار نکرد و با خود گفت شما در بدترین موقف قرار دارید و خدا با حقیقت آنچه می کنید آگاه است. گفتند ای عزیز بگمان او پدری بسیار سال دارد پس یکی ما را به عوض او بگیر بیگمان ما را از نیکوکاران می یوسف گفت پناه با خدا از اینکه جز همان کسی را بگیریم که متای خود را نزد او یافته ای. در آن صورت ما بیگمان از ستمگاران خواهیم بود پس چون برادران از وای معیوس شدند در خلوت با هم مشوره کردند برادر بزرگشان گفت آیا نمی دانید که واکن پدر شما از شما عهدی به نام خدا گرفت و پیش از این در مورد و سخت چی تقصیری را مرتکب شدید من این سرزمین را رهان نمی کنم تا پدرم به من اجازه بدهد یا خدا به من حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است با سوی پدر خیش بازگردید و برایش بگوید ای پدر ما بگو من پسرت درستی کرد و ما گواهی نمی دهیم مگر به آنچه می دانیم و ما حوادث غیبی را جلوگیری کردن نمی توانستیم برای الموری خیشت از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که در آن آمدیم بپرسو. واقعا ما راست گوییم یکوب گفت نخیر بلکه هوای نفس شما برای شما کار را آراسته است پس چاره من صبر جمیل است امید است که خدا ایشان را یک جا به با من بازگرداند که هم اوست دانا و با حکمت و از آنها روی گردانی و گفت ای دریغ بریوسف و چشمان او از اندوه سفید شد پس او خشمش را فرو می برد. گفتند به خدا که تو از یوسف همیشه یاد می کنی تا در غم او بیمار شوی یا حلاک گردی گفت من غم و اندوه خود را تنها به خدا شکوه می کنم و از خدا چیزی را می دانم که شما نمی دانید. ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش اینجا کنید و از رحمت خدا نامید نشوید حق جز گروهی کافران کسی دیگر از رحمت خدا ناومید نمی شود پس چون بر او یعنی یوسف وارد شدند گفتند ای عزیز ما و خانواده ما به سختی دوچار شده ایم و سرمایه ناچیزی با خداورده ایم پس به ما پیمانه کامل بده و بر ما صدقه کن حقا که خداوند مزد صدقه دهندگان هندگان را میدهد یوسف گفت آیا دانستید که با یوسف و برادر از چی کردید آنگاه که جاهل بودید؟ گفتند آیا تو واکن یوسف هستی؟ گفت بله من یوسفم و این برادر من است. واقعا خداوند بر ما منت نهاد بیگمان هر کی پرهیزگاری کند و عشق بایی ورزد پس خداوند پاداش نیکوکاران را زایی نمی کند گفتند سوگند به خدا که واقعا خداوند تو را بر ما برگزید، و واقعا ما بودیم. این گفت امروز بر شما سرزنش نیست خداوند شما را بیامرزد و او مهربان ترین مهربانان است این پیراهنی مرا ببرید و آن را به روی پدرم بیندازید او بینا می شود و تمام خانواده خیش را یک جان نزد من بیاورید و چون کاروان از سرزمین مصر جدا شد پدرشان گفت بگمان من بوی یوسف را احساس می کنم اگر مرا به ساد لوحی نسبت ندهید گفتند به خدا سوگند که تو واقعا در همان گمراهی سابقت هستید پس چون بشارت دهنده آمد و آن پیراهن را روی او انداخت بدرنگ بینا شد گفت آیا با شما نگفته بودم من از خدا چیزی را میدانم که شما نمیدانی؟ برادران گفتند ای پدر ما از خدا برای ما از گناهان ما آمرزش بخواه بگمان ما خطاکار بودیم گفت به زودی از پرودگارم برای شما آمرزش میخواهم بگمان او آمرزنده و مهربان است پس چون بر یوسف وارد شدن پدر و مادر خیش را به آغوش گرفت و گفت اگر خدا بخواهد به مصر ایمین داخل شد و پدر و مادرش را بر تخت زد نشاند ایشان در برابر او به سجده افتادند و یوسف گفت ای پدر من این از تعبیر خواب پیشین من حقا که خدا آن را راست ساخت و بیگمان ذات یکتای او به من نیکی کرد انگامی که مرا از زندان بیرون کرد و شما را از بادیه به با اینجا آورد بعد از آن که شیطان میان من و برادران من دشمنی یفتند حقا که پروردگار من برای کسی که بخواهد صاحب لطف است بگمان هم اوست دانا و صاحب حکمت ای پرویدگار من واقعا مرا از قدرت فردار گردانیدی و به من از علم تعبی خوابها و حوادث ها مختی. ای آفریدگار آسمان ها و زمین تو در دنیا و آخرت کارسازی منی مرا مسلمان بی میران و مرا با صالحان پیوست گردان این از خبرهای غیب است که آن را به تو وحیه می کنیم و تو نزد ایشان نبودی هنگامی که کار خیش را همه می ساختند و بعد دسیسه می پرداختن و اگرچه تو اصرار و زی باز هم اکثر مردم ایمان نمی آورند تو برای این امر از ایشان پاداش نمی خواهی این نیست مگر پندی برای جهانیان و ای بس از نشانه ها که در آسمان ها وجود دارند، از کنار آنها میگذرند در حالی که از آن رو گردان دهد. و اکثر ایشان با خدا ایمان نمی آورند مگر در حالی که با وی شریک هم میگیرند آیا از این ایمن شده اند که به ایشان عذاب فراگیری از جانب خدا برسد یا بر ایشان قیامت ناگهان بیاید در حالی که ملتفید نیستند بگو این راه من است که من و پیروانم مردم را با بصیرت کامل سوی خدا دعوت می کنم منزه است خدا و من از مشکان نیستم و نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل شهرها که به آنها وحی می کردیم آیا ایشان در زمین سفر نکرده تا می دیدند که آقبت کاری پیشینیان آنها چی شد و بگو من سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است آیا نمی فهمید؟ تا آنگاه که پامبران معیوس می شدند و چنین می پنداشتند که واقعا ایشان دروغ پنداشته شدند. در این حال کمک ما به ایشان میآمد آمد پس هرکی را می نجات داده می شد و عذاب ما از گروه جناعتکاران باز داشتن نمی شد. در داستانهای ایشان برای صاحبان خیرهت درس بردیست، قرآن سخنی نیست که بربسته شده باشد ولیکن تسقیق کننده چیزیست که پیش از آن آمده است و تفصیل همه چیز چیزهاست و هدایت و رحمتیست برای گروه مؤمنان